افسونه افسانه به نام خدا. سلام دوستان، حتما شما هم با این نظر موافقید که شنیدن و خواندن افسانه ها به عنوان جلوه ای از ادبیات شفاهی هر قوم و ملتی همیشه لذت بخش و جذابه. در افسانه ها می پای باورها، آداب و رسوم، ارزش ها و موضوعات فرهنگی مردمان هر سرزمینی را دنبال کرد. دوستان همراه، فرهنگ مردم ویتنام واقع در جنوب شرقی آسیا یکی از قدیمیترین فرهنگ ها در دنیا است. های این سرزمین هم بخشی از فرهنگ کوهن مردم ویتنام به حساب میان و ریشه در فرهنگ و باورهای مردم این کشور داره. در برنامه این هفته افسون افسانه براتون افثانه ای رو از سرزمین ویتنام انتخاب کردیم با نام مرد پرخور و اردکهای وحشی. برگرفته از کتاب هدیه کلاخا با ترجمه از عبدالصالح پاک و تنگارگلی یلقی امیدوارم از شنیدن این افسانه زیبا لذت ببرید. داری در سرزمین ویتنام مرد پرخور و نادانی بود که یانگ نام داشت این مرد هیچ کاری جز خوردن و خابیدن انجام نمی داد. زن بیچاره اون از صبح تا شب این بر اون بر کار می کرد تا غذاهای جور جوری که شوهر پرخورش دستور می داد رو تهیه کنه. مرد پرخور صبح از خواب ناز که بلند می شد درشت و گوشتالودش رو به سختی تکون می داد و یک بند دستور صادر می کرد آهای لن صبحونه پنیر و گردوی تازه میخوام آهای لن کجایی نهان نهان نهان ماهی درست کن البته زنجبیل و سوس بادوم زمینی هم یاد نمه. آهای لن شام شام شام همست گوشت قرقنی رو سوپ حوی کردم آهای لن کجایی؟ من گرستمه پس چی شد این ماهی با سبسی جات؟ آهای لن مردم از تشتگی. یه لیوان آب بیار گلون خشکه خشکه آب بیار آب آب آب آب آب آب آب, آب بیار آب آب آب, آب. زن بینوا دور خودش میچرخید و نمیدونست کدوم دستور شوهرش رو اجرا کنه اون چاره جز قرولوند کردن نداشت ولی بالاخره یه روز کاسه صبرش لبریز شد و با تذر رو لب به شکایت باز کرد وخه منم هم آدمم هم. به خدا دیگه خسته شدم مگه من چقدر توانه کار کردن دارم شب از روز درد دست و پا خواب به چشمم نمیاد دیگه نمیدونم دیگه نمیدونم مگه من با زنای دیگه چه فرقی نه اون پول نگی باشه چیزی بیار بخورم بابا دیگه خسته شدم باز باز عصب نشم برای شکم بامونده مونده تو بغض کردم اصلا از امروز خسته بی همین که گفتم <تصف> نه. نه. <تصفيق> تو تو که این حرف جدی نمیگی ها البته که جدی میگن دیگه از پرخوریای تو خسته شدم من چگونه کردم که باید هم بیرون کار کنم هم توی خونه ها یه نگاهی به دور برات بنداز آقای فونگو ببین ف... از صبح تا تو شب توی برنزار کار میکنه همیشه با دست پر به خونش برمیگرده زن با خیر راحت به کاره خونه میرسه اون وقت تو چی تو فقط هیکل گنده میکنی یا انگار نه که منم آدممو به استراحت و آسایش نیاز دارم از امروز دیگه بردگی تموم شد بله تموم شد از امروز تو دیگه باید کار کنی نا. مثل آقای فوند اصلا اصلا مم. مثل همه مردم فهمیدی یا نه لند مم. میشه انقدر اسم آقای فونگو پیشو من نیاری <تصفيق> خب من میدونم تو زن زحمت زحمتکشی هستی هم. ولی آخه من چجوری میتونم کار کنم وقتی همش دلم از گرسنگی مالش میره ها همین که گفتم اگه میخوای گرسنگی نمیری یه فکتی به حال خودت بکن نه لن من من نمیخوام گرسنگی بمیرم خب خب من باید چیکار کنم ها آ... باشه قبول هر کاری تو بگی من انجام میدم واقعا... مجبورم دیگه بگر نه جوابی این چی بدن؟ تو... تو میتونی به بازار بری یا حداقل خرید و فروش کنی از این دست بخری و از این دست بفروشی ببین یانگ، الان خیلیا مرغ میخرن دونه میدن چاقا چلش میکنن و به قیمت دو برابر یا حتی سه برابر بفروشن این کار که ازت برمیاد نه؟ البته که ازم برمیاد؟ مکه خدایی نکنده من کلاقم <تصفح> خوب تو باید اون مرغ چاق چلمانو به بازار ببری یا با م... یه قیمت خوب بفروشی مرگ رو <متصفح> نه نه نه نه نه نه من موافق نیستم اصلا موافق نیستم موافق نیستی؟ چرا؟ خوب خوب به خاطر اینکه تو قول داده بودی اونو برای روز تولدم سوخاری کنی که اینطور آره یادت اومد یادت اومد آره خواهی از آره <تصفح> آره، قول دادی یادته؟ ولی الان فروش اون از سخاری کردنش مهم تره ولی من باقی سخاری رو خیلی خیلی دوست. یانگ همین که گفتم قول بی دیگه اما من بحث نکم بایر از قضا خبری نیست که نیست قضا بله مرد پرخور که چاری نداشت و نمیتونست گرسنگی و بی‌قضایی رو تحمل کنه قبول کرد که تنها مرغشون رو به بازار ببره و بفروشه فردا جونگ زن سور زود از خواب بیدار شد و بسات صبحانه را برای شوهرش آماده کرد اما یانگ تنبل همچنان در خواب بود زن بالای سر اون رفت یانگ مم. یانگ مم. یانگ با تو هم بیدار شد شده؟ بزن یه کم دیگه بخواب بخوابی صبح شده مگه قرار نیست بری شهر چرا چرا چرا میرم, میرم میرم تا تو آبی به صورتت بزن من میرم مرغو میگیرم و میارم آم چه چه خوابی من چه خامی رفتم تازه داشتم خامه یانه قضا میدیدم ها و... یانگ سامونه رو میزه اون اجاقم خاموش کن ماج ماج اجاقو چرا دیگه خاموش چند دقیقی گذشت. زن با خوشحالی در حالی که مرغ چااق و چله توی دستاش بود به اتاق برگشت. مرد از اینکه یه وعده غذای مرغ سوخاری رو از دست داده بود با حسرت نگاهی به مرغ انداخت و آهی کشید. زن مرغ رو توی سبدی گذاشت و به دست مرد داد و به اون سفارش کرد که اونو به قیمت خوبی بفروشه. مرد هم در حالی که هیکل درشت و گوش آلودش رو به سختی جابجا جا می کرد بلند شد و بعد از خداحافظی، با قدم های کند و سنگین به طرف شهر به راه افتاد. یانگ <موسیقی> تمبل و پرخور به شهر رسید. اون نمیدونست برای فروش مرغ باید چیکار کنه چند دقیقه گیج و سردرگم به این طرف و اون طرف رفت و بعد خسته که شد رفت توی گوشهی نشست و خیره شد به مرغ چاق و چلی که توی سبد در حال تکون خوردن بود ساعتی گذشت اما در شروعی بازار کسی به یانگ که بی صدا و آروم در گوشهی نشسته بود توجهی نکرد ظهر شد و آفتاب گرمتر یانگ دیگه خسته شده و حوصلش هم سر رفته. خسته شدم چرا کسی با من توجه نمی‌کنه چی کار کنم ها فهمیدم فهمیدم آی شما چطوری مرغاتونو می‌فروشین من من باید چیکار کنم ها مردمی که در بازار در حال گذر بودن با تعجب یانگ نگاهی انداختند و بعد هم با بیتفاوتی از کنار او گذشتند. یانگ که دید کسی به او و سوالش توجهی نداره، با بی‌حوصلگی از جا بلند شد و به طرف خونش حرکت کرد. کمی که رفت، احساس گرسنگی کرد. ایستاد. نگاهی به دوربرش انداخت. کمی دورتر، مرد لاغرندامی در حال نزدیک شدن به اون بود. مرد به یانگ که رسید گفت: سلام استمهن ببینم تو تو این حوالی زندگی میکنی؟ نه نه من وقتا مرغ بفوشم آها پس یه فروشنده یه دورگردی اه. این مرغ تو چند میفوشی؟ من نمیدونم فقط لند زنمو میگم سفارش کرده اونو با قیمت خوبی بفروشم اجا ببینم تو چطور دردت میاد مرغ به این چاق و چلده ای رو بفروشی ها اون اون فقط جون میده برای یک کباب درسته سبیل من همین نظر رو دارم ها راستش نه قول داده بود اونو برای روز تمله برام سخاری کنه ولی, ولی زرزیر قولش زرزیر قولش چه بر مه... ولی مهم نیست اگر تو بخوای من میتونم همین الان در عرض چند دقیقه یه جشن تولد زیبا و به یاد موندنی برات و این مرغ چاق و چلد رو برات سخاری کنه درست همونطوری که زنت به قول داده بود راست بگی کی. چجوری؟ با... با این سازدهنی با... آمان چطور بود؟ خوش نومد؟ چیز زیفا و آرامش بخش میدونه این صدای سازدهنی همیشه برای من مثل لالایی میبونه از بچگی همینطور بودم دست خودم نیست با صدای سازدهنی اصلا نمیتونم تلکامو باز نگردارم یو چه خوب پس صدای سازدهنی برات مثل لالایی میبونه درسته درسته همینطوره <BI> حالا که اینطوره دیگه لازم شد که به مناسبت تولد بهترین دوستم یه قطعه زیبا بزنم من خوابم میبره گفتم که دست خودم نیست دوست من خواب نیمروزی هم لازمه بذار بزار یکی از بهترین آهنگ برات بزنم حتما خوشت میاد بله من خوابم ببرم. نگران نباش تا تو یه چورتی بزنی منم بساط جشن تولدت رو آماده میکنم وقتی هم که بیدار شدی یه مرغ چاغ و چدهی سغاری شده رو میل میکنی <تصفيق> بله مرد راهگذر با زرنگی تمام شروع کرد به نواختن سازدهنی کم کم چشمای یانگ سنگین و سنگین شد و صدای خور و پفش بلند شد مرد راهگذر وقتی از بابت خواب رفتن یانگ خیالش جمع شد با خیال راحت مرق چاق و چله را از توی سبد برداشت و با شتا از اونجا دور شد ساعتی بعد یانگ از خواب بیدار شد دلش داشت از گرسنگی ضعف میرفت. نگاهی به اطرافش انداخت و بعد با سختی از جاش بلند شد و چند قدمی به جلو برداشت و بعد با صدای بلند مرد رهگذر را صدا زد اما نه خبری از مرد رهگذر بود و نه اثری از مرغ چاق و چله یانگ ساعتی منتظر اومدن مرد رهگذر موند اما وقتی دید انتظارش هیچ ای نداره با دست خالی به طرف خونهش به راه افتاد در حالی که دلش داشت از گرسنگی ضعف میرفت نزدیکی های غروب بود که یانگ خسته و گرسنه به خونهش رسید همسرش لن توی آشپزخونه مشغول درست کردن غذا بود بوی مطبوع غذا توی فضا پیچیده بود یانگ که دیگه نای راه رفتن نداشت و به شدت گرسنه بود از همون دم در فریاد زد لان لا گازا رو بکشترام از کرستگی تلف میشم. اومازیزا. آره اوماطا. بیا بیا گاز اومد. بیا ببینم برای چی درست کردام. چی درست کردی؟ وای خدای من چه بوی قضایی لن زود باشه زود باشه زود باشه زود باشه, زود با رو باشه بود باشه بودو. باشه بودو با خودم گفتم حالا که یانگی مثل اقای فنگ مرده دیگر دفته دوباره دنبال... بل کن اقای فنگ و مرده دیگر رو من گرستنمه گرسته <laughs> <گروسنه laughs> <گروسنه laughs> باشه <laughs> اینم یک کاسه سوپ بر میشه دریایی با کشنیز و زنجبیر آه. آه. از خیلی گرستنگی کشیدی نه خیلی خیلی هم اینطوره محجب چه خب بگو ببینم آه آه نمیخوای بگی چی کار کردی؟ حتما پول خوبی بابت فروش اون مرغ گیره تو <تص> مرده نه؟ یانگ، یونگ مراقب باش عزیزم مراقب باش آرومتر اون مرغ خیلی میارزیم امیدوارم اونا به قیمت خوبی فروخته باشید خواهش میکنم بذار من غذا رو با خیال راحت بخورم اون وقت همه چیز رو میگم از لحظه ورودم به بازار تا اون اتفاق همه رو بر... اتفاق؟ کدوم اتفاق؟ زود بگو ببینم چه دستگلی به آب یانگ زود باش لن، دستگل چیه؟ بابا می‌ذاری غذا ما بخورم یا نه؟ نه، اول باید همین چیزه برام تعریف کنیم، باز غذا تو بخورم بابا، از دنگاه غذا ما بخورم، هم بازو تعریف کنم خیلی خواب باشه باشه بخور و تعریف کنم، زود ب یانک همونطور که مشغول خوردن بود، تمام ماجرا رو از لحظه ورودش به بازار تا آشنایی با مرد رهگذر و جشن تولد و سازدهانی و مرسخاری و خلاصه همه چیز رو برای زنش لن تعریف کرد. لن که از سادگی شوهرش یانگ به شدت عصبانی و ناراحت شده بود، تصمیم گرفت اون رو تنبیه کنه و به همین خاطر هرچی خوراکی دم دست بود از جلوی چشم اون پنهان کرد. اون میدونست که این کار بدترین تنبیه برای شوهر پرخور و نادانش روز از تنبیش شدن یانگ توسط همسرش لنگ گذشت. یانگ که دیگه تحمل گرسنگی رو نداشت، با هزار خواهش و تمنا از همسرش خواست که اونو ببخشه و یه فرصت دیگه بهش بده تا ثابت کنه که اون هم میتونه مثل آقای فونگ و مردای دیگه ناناور خونه باشه و یه کار درست و عاقلانه انجام بده. روز بعد لنگ چهار سکه جور کرد و به یانگ داد و از اون خواست به بازار بره و خرید و فروش کنه. و به قول معروف چیزی رو از این دست بخره و از اون دست بفروشه یانک هم مسمم با قدم بلند راهی بازار شد رفت و رفت تا به کنار تالاب کوچکی رسید چند اردک توی تالاب در حال شنا کردن بودند. مرد با دیدن اردک ها به هیجان امرد آه چه اردک های قشنگی میتونم اونا رو بخرم و اون فروش اونا پول زیادی به دست بیام اینجوری لنم ازم رازی میشه و قصه اون برام درست میکنه خب صاحب کجاست؟ صاحب این اردکا آهای کی صاحب این اردکاست؟ من میخوام اونا رو بخرم مرد هر صدا زد کسی جواب نداد اون برای پیدا کردن صاحب اردک ها نگاهی به دور برش انداخت. ولی در اون حوالی کسی رو ندید. مرد جلوتر رفت. کمی اون طرفتر در کنار شالیزاری سرسبز دو پسر بچه در حال چراندن گاوهاشون بودند. مرد با خوشحالی جلو رفت و به بچه ها نزدیک شد. بچه, خل... بچه بله. اره ها... بچه ها! این اردکهو ی توی طالب ممال زمان هست اردکهوا! شما صاحبه اونایید اردکه توی طالب رو میدیم اردکه اردکه من خریدارم، من خریدارم اردکه وحشیا درسته اردکه رو میگم اگه شما صاحبه اونا هستین من اردکه از شما میخرم for چیزه اون فرق اردکه وحشی رو با اردکهه می دونه آره خیلی <تصفح> ببینم دیرت میخوری که میزر سر به سرش بزر آهی های آه. آه. برای تفریخوه شما دوتا چی داره؟ ای جا ای چی چی چی ما داری درماره یه فروش اردکا با هم مشورت کنیم خب اگه مشورتون تموم شده بگید میخواین اردکاتون بفروشید یا نه چلا چلا البته که میفروشیم خب خب خب خب خب چه میفروشید خوبه چیزه ببین اگه خریداری قیمت اونو ده سکر ده سکر ده بابا جان ما برای بزرگ کردن این آردکو خیلی درم خب باشه باشه درون ببینید چهار سکه مفروشین چهار سکه چهار سکه, سکه. نه. نه. خواهش, خواهش میکنم خواهش. خواهش میکنم ولی من چهار سکه بیشتر ندارم خب چی میکی؟ خب باشه باشه باشه, باشه. مفروشین فقط چی؟ فقط یه شرط داریم آقا باشه باشه باشه هر شرطی باشه قبول میکنم بگی میکنی آقا چیزه خب، ببین؟ راستش رو بخوای خب. میدونی این اردک به ما خیلی عادت آخه ما اونا رو بزرگ کردیم ما خب خب, خب. تو تو با اون رو کنی خواهد تو خواهد خواهد. اینجا دور بشیم اون وقت با خیلی راحت برو اردک رو بگیر با خودت دور خونه باشه من باشه باشه, باشه اردک ها دور شدن ما نشنه خواه حواست باشه, باشه. عواست مرد نقدان پذیرفت و پسر بچه ها چهار سکر رو از او گرفتند و با تندی همراه گافهاشون از اونجا دور شدند. نادان افسانه ما بلا فاصل بعد از دور شدن پسر بچه ها به طرف تالاب رفت. اردک های وحشی با دیدن مرد که با قدم های پرشت به طرف اونها می رفت ترسیدن و به پرواز درآمدند و از اونجا دور شدند. مرد نادان وقتی پرواز اردک های وحشی رو دید با خودش گفت. آه. خب پروازم برای اردک ها لازمه دیگه. من همین جا میمونم می‌مونم اگه امروز این بفروشم با پول اونا کلی خوراکی میخرم و با دست پر میرم خونه درست مثل آقای پوند بابا بابا پس چرا این اردکار که حوصله از انتظار کشیدن سر رفته بود خودش رو به زیر سایه درختی کشوند و چشم دوخت به آسمون ولی از اومدن اردک های وحشی خبری نشد که نشد ساعتی گذشت و کم کم آفتاب به وسط آسمون رسید و هوا رو به گرمی میرفت مرد که خسته شده بود و گرسنگی جوری آزارش میداد با عصبانیت گفت ای بابا چه جور خسته شدم از بس به آسمون چش دوختم دلم داره از به مالش میره. خورشید از پهنای آسمون کنار رفت و هوا داشت رو به تاریکی میرفت ولی از برگشتن اردک های وحشی خبری نشد. مرد نادان دیگه از این همه انتظار خسته شده بود. <تصفيق> خیر فایده نداره این اردک های بی خیال حالا حالا خیال اومدن ندارن آی نه لان الان دیدی نگران شده حتما مطمئنم آهای اردک های بی خیال. من باید برم خونه زنم منتظره مرد با بی‌حوصلگی هیکل درشتش رو جابجا جا کرد و از جا بلند شد و در حالی که هنوز نگاه منتظرش توی آسمونی چرخید به طرف خونش راه افتاد. خستگی و ضعف به خونش رسید زن با دیدن شوهرش با خوشحالی به پیشوازش رفت یانگ بالاخره اومدی دیگه داشتم نگرانت می شدم خب بگو ببینم چی خریدی چی فروختی. لن اجازه بده که نیبینی دارم از خستگی و گرسنگی می میرم خیلی گرستمه خیلی قضا بود است برات مرق سخاری با سس مخصوص درست کردم زودتر قضا رو بکش کرد شدت میتونم یه فیل درسته رو هم بخورم باشه باشه بگو ببینم کس کار چطور بود چی خریدی اردک چند تا اردک خریدم ولی اونا رو هنوز نفروختم اردک کدوم اردک من که اردکی همراد ندیدم اونا کجان چیز جز... میدونید ب... ب... ب... می چیه وقتی میخواستم اونا رو بگیرم پرواز کردن و رفتن توی آسمون من هر صداشون زدم و منتظرشون نشستم نیمدن که ولی بر میگردن چی؟ میگردن اونا پرواز کردن آره دیگه آخه با... وقت پروازشون بود ولی لعن برمیگردن همش که نمیتونن تو آسمون بمونن بالاخره میان فردا میرم سراغشون حالا حالا حالا زرتن رو بیار که دارم از گرسنگی طلب بشم حالا انقدر گرسنه نمونده بود آخ هر بخاری باو شکم بمونند تو ت... تو بچه‌ی اردکای اهلی اردکای وحشی خریدی این یعنی نادانی محض بابا اردک اردک دیگه چی میکنه؟ اخ... اه، اه. اه، یه لحظه بذارم خیلی خوشمرزه شده لحظه کش که یک کمی بیشتر درست کرده بودی تو،, تو فقط از پس خوردن برمی همین بابا مگه اردکا با هم چه فرقی دارن؟ هان همه یکی دیگه تو, تو هیچی نمیفهمی هیچی آه! تو فقط فرق قضاها رو خوب میفهمی هم. چار سکه موفم و دستمون رفت گرفت اونم بابت نادونی تو تو خیلی نادونی آه. دلم میخواد میفهمی. میفهمی؟ این رو فریاد بزنم فریاد میفهمی میفهمی چرا اینجوری هفت بزنی من من من من من اصلا نادون نیستم خیلی هم زرنگم تازه آه. تازه اون بچه ها عملش گفتن آه. دسته که میخوان ولی من آه. چار سکه آره تو خیلی زرنگی خیلی زرنگی اونقدر که ب در بیارم یونگ تو بگو من با تو چیکار کنم ها میتونه خدا عزبانی نشون من فردا اون اردکا رو برمیگردونم حالا میبینی برمیگردونی؟ آخه این چه حرفیه که میزنی؟ تو چطوری اردکای وحشی میخوای برگردینی؟ ها چطوری؟ قبولت کنار طلاب میشینم تا اونا برگردن دیگه من فردا بهت ثابت میکنم که نادون نیستم زن چیزی نگفت و اصابانیت و خشم خودش رو فرو خورد و مرد مشغول خوردن شام بود و در دل فکر میکرد که فردا چجوری دنبال اردک های وحشی بره و به زنش ثابت کنه اونقدر هم که اون فکر میکنه نادام نیست فردای اون روز مرد نادان دوباره به کنار برکه رفت و تا نزدیکه های ظهر منتظر برگشتن اردک های وحشی موند ولی از اردک ها هیچ خبری نشد مرد که حوصلش سر رفته بود با نومیدی گفت هیچ پایده نداره بده برم سراغای کارتی من باید به بلند ثابت کنم که نادون نیستم خیلی هم زرنگم آره آره باید ثابت کنم مثل آقای فون مرد زحمتگیش خونم باید ثابت کنم وله مرد نادان این رو گفت و از جا بلند شد و با قدم سنگین در کوچه های اطراف به راه افتاد مرد همینطور که داشت میرفت به خونه مجللی رسید پنجره یکی از اتاقا نیمه باز بود و صدای پچ پچ از اون به گوش می رسید مرد نادان ایستاد و با کنچکاوی و دقت به صدایی که به گوش می رسید توجه کرد کیم همسر مهربونم خدا رو شک که روزگار خوشی در کنار تو دارم عزیزم وقتی با تو هستم احساس میکنم توی آسمون آبی تمام دنیا رو از اون بالا نگاه میکنم و خیلی خوشحالم هنوز حرف مرد تموم نشده بود که مرد نادان با شوق و هیجان سرش رو از پنجره نیمه باز داخل کرد و گفت برمان. وقتی شما پرواز میکنی یه نگاهی به دور و بنداز ببین میتونی اردکای منو اون بالابالاها ببینی ها؟ مرد و زنش که از دیدن سر مرد چاق حسابی جا خورده بودن با شتاب به طرف پنجره دویدند اونها از اینکه یه مرد غریبه به حرفوی خصوصی اونها گوش سپرده بود خیلی ناراحت و عصبانی شده بودند مرد ثروتمند با شتاب از جا بلند شد و به طرف تفنگی که بر دیوار اتاق خودنمایی میکرد رفت صحب کن. کن الان نشونت بیدم که سرک کشیدن تو خونه مردم یعنی چی کن وانگ. وانگ. عزیز دلم ولیش کن مگه نمیبینی این مرد نادونه از حرفاش معلومه که این کارش از روی نادونیه نه از روی ولی کیم اون باید ادب بشه تا یاد بگیره بدون اجازه عزیزم نب... بهتر اون تفنگو بذاری کنار مگه چش. نشنیدی که از قدیم هم گفتن نادون تربیت بشون نیست, که نیست. ولی. چش. چش. مرد خشمش و فرو خورد و محکم پنجری اتاق رو بست و تفنگ رو به دیوار آویخت. مرد نادان هم دست از را سر به طرف خونش را افتاد در حالی که هنوز نگاهش به دنبال های وحشی توی آسمون می‌چرخید و در دل هم به خوشبختی آقای فونگ فکر می‌کرد و هم به اینکه این بار جواب همسرش رو چی باید بده. افسانه مرد پرخور و اردک های بحشی رو شنیدید. این افسانه برگرفته شده از کتاب هدیه کلاخها با ترجمه از عبدالسالح پاک و تنقربالی یرقی است امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبا لذت برده باشید افسانهها ها با بیان شیرین ما را با واقعیت های اطرافمون آشنا می کنن. عزیزان همراه به پایان برنامه این هفته افسون افسانه رسیدیم. دوستان و همراهان عزیز رادیونمایش نمایش شما میتونید با تلفن گویای 162 تماس بگیرین و پیشنهادها ها و انتقاد های خودتون رو با ما در میان بذارین. سامانه پیامکی رادیو نمایش 301075 لطفاً به ما پیامک بزنید و نظر خودتون رو در مورد افسون افسانه حتما بگید نشانی ما رادیو نمایش نقطه آی آر مویسنده زینت سالحپور بازیگران کرامت رودساز کامیار محبی مونا صفی، عباس شادروان رازیه مومیوند محرخ افضلی محمد یگانه سیما خوششم کارگردان بهرام سربری نشاط. افکتور نرگس موسافور صدا بردار مجید آینه تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افثانه ها رنگی از زندگی هند. افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افثانه دیگر بدرود